بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله بالله الطيبين الطاهرين العزّمين العظيمين الطاهرين الله ما خا اینکه شای خارج درس تو که اون تحلیز این مطالب همون صاحب در ترانده همون تفریهاتی که از خارج بردیم دیگه خب مازم و مازم 13 رو به حسب تفریبندی نوع شاید. ان کلیما توسط درو پر حسابات دار صاحب مرحوم شیخ و به از این فنده و امور مشابهی را دیده. در این ماهات به خاصی میوژه ایشون فنه کرده در ماغره و شروع به انجام کلی دسته مرموم سال وسائل مرموم در مورد برای تصفیل هم اینها رو بستا دستید در حسن بروب نیجایی پس اینکه برای مسئله دو سال در به باب شهران و تا اینجا محرم رو گفتن همه هم به محرم و به حسن به بروب هجایی اولی یه بود بعد یه ناب، بعد یه بیب، بیب دیگه بعد در نهایت یه سیزدهم از نوع چهاران از مکان محرم ما تمرکز داریم، یعنی ما داریم می‌دونیم که در این مکان سر بروی، و بیشتر نظر آنهای شرح مقرسی بودی بیشتر نهره و در بحث و کیفیت ترفیه بحث من خوشه که به خودشون همه ما داره ها بیوارمتی به جنگه که و اتبار با مستفیده و ده تواصل ها من ها ماورد مستقی زن این تفسیر زور خود تا مقدار از روایی به اشاره یا تقاسیم شاید بودن این هم یه در اون زمان مرمومه استاده ایشون مرمومه نراغی ایشون ایشون هم که برگزیه خبر بلان بلان به خدا به استاد دیگر ایشان من مصاب جواهر استاد دیگر شیخ هست استاد جواهر ایشان اینه که در هر مسئله میکنه ای میکنه می کنست اونجه که برد و ذهستی آب روایت بارد کنم از نقاط به زدان جواهر خیلی این سا برد ایشتر تا سی تا سیتر آور کشتر هم چه کنم با کنیم بیشتر خیلی عزیزی مفیده این شود اختصارم کردن مارد و که بولیتالا وشنگ و بولدزور از شهام واسده نمیانه و مواسده یعنی بسیری و از نمیان هر من یه توضیح اجمالی رو پرد بحث بشه حروض کنم. ما در وقت قنام در مقاسب محرمه چه ما چنده سنده مقاسب مرموشه همین کاری کرده اما نه به یک جا سه تا بند سرباب قنام ذهب شده تو مقاسب محرمه این خوب در تک بپرده یک آزاد قنام دو خود جایی محرمیه تو در, در برایات بیشتر جایی محرمیه ها. اما ما در برزرات خودمان که صدر باشدن این آزار مغرمی هم داریم هم به مغرمی بسن جایه مغرمیه یکی جایه مغرمیه یکی هم خود قنا این بخش سروه میسی مرموشه متعرض میشن پس اشتباه نشه یه بخش راجع به آزار قنا این از بخشی به سروه یا سروه آزار بخشه اونجا متعرض شدن یکی یک جاری این ای گذرچ هر دو گذشت جاری موردیه با آزاد قنام هر دو گذشت هر در اینجا مفرض خود به هم و این مقصد در کتاب احسانت هم هست. حالا نه شما اینشون در مختلف و هر عنوان و سهر وسائل هم الله همین کار کرده اون تفرد آنید اصلا در که من باید شون کتاب خودشک ندادن این مجان شون بیرده هم خودشک مرگی میرشن که در بحث کنا سه گزت دفت کردیم و سهر و هم روالش در در این حقوق مایوی تصابه این دفتا دفت که جز دوازده این ش چون ممکن ما از این کتاب نکنیم روایات رو از جامعه احادیس رو کنیم جا باب پونزه و بزنزد شونزده و گفته و باب نوزده و باب نوزده باب جایه با و در جایه مخمدی هم یک توضیحان دیزی چون چیه هم یک مطلبی ببورده به نظرهای مرس به ر این ببارده که اینجاست الان در خود حرمت جمع این رو در وسائل در تحبه مایی اختصافه باید نوازون بخورماته شبار نشون چیه وسائل به این که ما پر گذشته در خود حب هم ما پر گذشته تواله هم در سنت هم دارن جای مغنیه اونجا هم دارن و توضیحات جای مغنیه شدهش الان بحث خود خوده برای. پس یکیش قباری هایی که در تصدیر خوب زوره چون به ما سر بکنیم دیم دیم؟ من از کردم زور در خود پس به باقیه... کجیه یا کجی بکنم سخن کج سخنی که کجیه که اصل این کلمه از زور این دنده های که کجی دارن این کجیه دنده های سور اینه زورا هم که به برزاد کردن سابقا اگر از باره نگاه هم که میاد یه پیچه این بردار رو رو این پیچه دجره زورا یعنی اعجاج زورا مدروب بیگه برزاد شد همه شد اون اما که پای سمت ساسانیان بود بعد از این پیچه این برزاد که کسیمون ترون بیسکیویسی جمعون برزاده درمان سلمان پاستن بود زورا به این جرد برو گفته بیشه اشتباهات کنه به زور در میاد کچی ولدا به کن هم گفته شده به قیبت هم گفته شده به منا هم گفته شده به اده از امور با به زور گفته شده و تماما سر روز کنن اشان اینها از طبیعت خطرت الانی کش هستن برای اینه چون به وقت بر اشاره آبره کردم بعد روایات روایات که آنه ایچون بیه مرمومشه به اشاره آبره به صنده نکردن که ما الان را به در, در امروی و من ها مورد مستفیزم پی تفسیر حدیث و من ناس منیشته لحبر حدیث در طبیل الله برموازی که به نام دو دوناست که ما رو به داخلی که برد و من ها ما زور که قفلی تعالی که ایشون که راست که به حدیثش بردها عرض میکنیم هم از این که امام زور فرمدن اون راوی تبدیلش بلای اشتادون از زور کرده. یعنی مشهد زور اگر که باید بزردیم بلای اشتادون از زور رو به به اصلاقه نابدیری یعنی اون چون رست بود در اون زمان در جمعان خوبه در مرکه در مدینه رست بود که مثلا خانه هایی بود که اونجا مثلا چندیزها رو که خوصدابو جمع میتردن زی چند تا می زدن و می کندن و اینها مشاهده زور باید یعنی مشاهده بنا اونا و این را جبه من قبل از این که باید کلام بشن مثلا به رفت باید باید عرض از کنند که نزه در شرکت مقدسه خیلی ملتر که خون خون با حرامه که خون بکره. یا مثلا شمیده رو بیادگه هره نیمو کارن اما بعد از محرمات به و خیلی درار شده که دو جهی کاره داده نشه دو تا اون محرمات که خیلی درار شده این شراب بود جناب بود این دو تا خیلی درار شده تا در سال خلاقه بود امیر موم اصلا وقتی که به اسم معمون خواست از خارسان بیاد به طرف هراغ ورد چون معمون لباس منی حباس همی بود عوض به سرد به همه رده رضا منی حباس بخزاد ورده ابراهیم این خود ازا مهمی بود خود این ها داره بودن خود مهمی دوزن مصرواق آسانو اینه در نه خیلی شد آقا میشه وقت محنی گرمیان یعنی هم گذاشت در مقابل درستار شلاحات محنی رو شراحون رو میخورن حتی از خودش همیگه محنی بود یعنی هم پاژان باردن و در شهرها ما... این سال برد از ایشاره بکنیم از هجاره هر سالی ما اون زباره ما هنوز درست سپسی برای این در این کتاب احمد همین پجرد اسلامی آزا اسلام در اونجا هم داره عقانی هم داره خب عقانی هم داره, خب، عقانی هم داره را باید داره آدم قناع مسئله قناع در آدم اسلام داره که چشین جانی به هر حال از عجایب اینه که اولین شهری که در اسلام درسمند یک قناعی دیده داره شده یه مدینه مدینه که ما مدینه که از تا زمان امام حسن و امام موسیقی امام سجاد یکی در از های آش بیشتر اونجا در در بغداد در عباس مرکز مغنی های بزرگ یکیم خلیفه شده از مرنده های خلیفه شده بغداد روید شهر که محمیدونی رسمت در اوگه کاملا روش بداشت مدینه هست این هم این از خیلی چیز می سونن. و چیز تر اینه که چون خود شهر استراهم به مدینه رو در استداره سونن دارو سونه میگن دارو میگن در مقابل در مثلا کوچه که مدرسه تو بزاره این بگن اینجا رو میگن سونن زیاده در نجازه بکنن خیلی عزیزی در این شهری باشه. ای که باید سنن فهماندر حاکم یکی از این باید رایدش رناب بود خیلی شدید ها یعنی که... هیچ شهری در دنیای اسلام شهرت مدینی رو در رناب را داشت. یکی از محدثین عرض سنت نوی از دارمان نوف ایرانی سر بودن نمیشتن از بزرگان حدیث هم از دارم بخاری هم از سر چه از بزرگان؟ این اصلا موندقی به قناع بود اگه مثلا میشونم سه حدیث رسول الله و اون بخواه اول یک قناع بکنن این آغاز کنن تا این شهر به تحدیثشی که اوش اول با اغال مردم شدیم یک قناع خواهد یک دهنی با خواهد رسول توی یک آغاز بگو کنن که من حدیث تحرک کنن نوشتن با این شهر و از دوزه اهمه شهر مردم اصلا نه این شهر که اصلا شرک میداز که بزنید که حدیث اندرسولان بگه یک قناعی گفته به هر حال دو چیز در دو شرک خیلی محروب شد یک شرک دیگر محروب شد چیز دیگر این دو شرک درش کن یکی خوردن در نمیز اینو شراب در کوفه و یکی همه قناع در از حتی سه در نباید یا سه نباید یه مدارم آشون مدینه هست اما در جنار خیلی عجیب با این همه رواجی که در اون زمان پیدا می کنه جنار در مدینه و معاصر با چند تا ایمان بزرگوار ما همچی بیده که منحکت در روایات ما نشده این خیلی باید مثلا روایاتی بیده که قنار تجیز بگنیم هم در این برکریگوار در اون زمان یعنی عواظل لبن دوم مثل صالح سلوسی و سلوسی و سلوسنی ها این سه شهر معروف بودن مدیه به نام معروف بود مکه به موسیقی خریمشون خریم جنوی مدیوری مکه به موسیقی محروف بود و روکن به نبیه معروف بود به کتاب یعنی در انرون مروانه سپر خدیمی احدای در انرون شهارون خندال فرزادی حمودگاه خندال هم از بزردان احنا بلند بزردان علمان احنا بلند اشتبوا دوست فرمت نعبی که به دن قول اهل دلمدینه و به قول احر و قول احر محكه في المساعد چهی لشهر مثل مدنیا بکران در مجال احر دیارت ها که از این فقیه های ساله این از کنار رو به فسای مدینه جارید بیمونستن مبید رو به فسای احل و موسیقی رو در موضوع تفصیح به فسای اهل مکه داره که این اصلا موجب تره تره اسلام میشه از ایسلام داره این مطلب ما در این مطلب که در روایات داریم یک شخص روایات داریم که حضرت و این ها احمان بودیم تأثیر من بخشن شد صاحب آمده در روایات من در از حضرت بازه... سجاد جالیهی داشتن که برایشون اشعار زهر دو دومم دو تو قبلی به همین اشعاری این روایت منحسرن الان در کتاب حقیق و مرسلم آمده و هنوز از من محسری که یاد احتمال میدن ولی ایماندالله شاد چه کتاب باشه احتمالیه هنوز ما محسری در حدیثی داشتن یاد و یه رو باید دیگه یه هست کنون برمیشون برمیشون از رو خودم علایه حاضر یک مشکلی که در وقت جنایت هست من رو برمیشون و احتمالا اهل مرمینه در این ترمیل هم و خودشون این مدد با هم به رسول الله نصف دادن در سنه تو سری بخواهی هست و در سنه این آنه برشون من تو جهتری رو رزمی کنم روشندتر از این احتمالا یه خلط موضوعی شدیه که به ناماسه شدیه برکوزیم احتمالا اشاره اجمالی کنم مثلا فرصوی هم شد چیزی باشید برزیرفته هستم این احسانی زیاده از این یا سیاخوز در آفریقا حالا فرخص خاصی که انزام میدن احتمالا مثلا بیگه این رینات ما بینید ما در آیاتی که در واقع قناب همین لحظه حدیث و زور رو می هست یه yes, در جامعه آحادیثم همین آیات رو شما آحادیث آیات رو مبارکه هم, هم من هم از اون حاشین و سه خدا کردم از از تحباز در زید آیه مبارکه همتون سامدون سامدون با سین و مین سامدون سمن با سین و مین و دار سامدون ایشون بگه در لوقت هبرشه است این این مخیرمی این در در جاهاته در آیات هم این در مسادر احسانه در آیه قنام در, در این, این که اصولا یه نوع قنامی خاصی که در روایات داره ا بهبر می آیش سرش در برراناه میکرد که هررا شما به بهمر میده. احتمالا یک نوع رقص خاصی رقص متعارفی که از چه مجلس شانه هست یک نوع رقص خاصی یا این یا با ننگره یا با تو انجام میدادند به بمایه خاصی هم داشتن. اون رو احتمالا دماشون رو سامنز می یا سموت گفتن و اون راست و هم احتمالا ذهن میگفتن. توی مرحوم شیخ انصاری اون ذهن اینجوری بوده ما متن ذهن و این استنباطاتی که در روایت اهل ائمه تابع سخانی از فنون یعنی فنون بازه اختراعات و خطا و نُون ظننه. ظننه معنی راکته. شلون احتمال ذهن کی نفس هم خبری باشه؟ خیلی محنوظ نباشه زفن زفن, زفن برزن محسن دلوقتي. ما تو داره اون فقط یکی داریم اونم حدیث سکونی نه ها رسول الله هنه زفن این هم در رو برزن که اگر اون حدیث قبول بشه معنوش این است که رفت مثل غناب در عنوانه حراسه من احتمال قبی میدم این دو تا یک نوع فرسنگی رو سر. هرشیه ها بوده که انجاب میدادن و این استلاحه هر دار چون رو برخش درست باشه بنار شده بنار نباشه برخش نباشه حالا این رو درستان از اون در در در یکی راجع به آیات بود یکی راجع به این مجلع. و یکی هم یک درجه از غنار خیلی معروف بوده نسبتا با این دفت با ده بوده من هران توبیه بیده من غنار روی توبیه از این کنم بسی که معروف. یعنی توی اون نظمار و اون انواع دیگه به ایسا خود و, بردرس, و هم هم بردرس این ها خیلی عمومی نبوده مثلا بردرس این رو همه حکمانه هایی که در رحبات این ها بوده میرستن اونجا مثلا شبیه مثلا کالار و اصلاح موسیم ها میرستن اونجا و اونجا از درسی که علمی بوده یه مردارم که نصف ازداده شده به رسول الله از علیه نه همینه که مثلا یه قصه ایسی اینو آن که شما نگه بوده نفس قناب دهنیم بین احرسان یه طبیل و نیشه داره من شاید را شدار در احسان اشاره بکنم یه احرسیشون جایز دیدن یه چیم ها شکره دوش ندارم من را از کلمه احرس مدینه بیدیدیم یکیم ابنه هرس آنیم که اگه خود که ادل یوازه کنان خیلی اصلاح شده یه چیزی همون در دقیقی میگم که اینشون حتی همون حدیث موضوع یکی روی گرم میکرد یکی روی خودش پسیدونی کنید و هر حال اشون به شدت قاعده به جواب دره راجبی و این رو الله عرض میکنیم که انواع مختلفش یکیش شده بوده و مخصوصا صحبت این که بعد از این جاویه ها و مقرمیه ها یورو رسولت درست که این مدن حالا اگر خواستی شد این مدن اصلا پیشوانای آمده مختلفی در کتاب اهل سنت آمده اگر ماید ما بودین در کتاب عبقهی بومنسته در جلد هفتون که چند مدنش اونجا آورد خورش ایمان از مسادر احل سنت نرمیشون اونجا نگاه دارم که به مطران حتی در یک این اینجور داره یک جایی در رسول الله هرسید درم دستش که کفی آنسا کردم به در مقابل نرد بر کردیم نرد بر کردیم در مقابل شما در در درستی قبل همون اگر نرد بکردی انجام بود اگر نرد بکردی نرد که ناما از ارام بیشه با نرد با واضح بیشه از این مرد منطقی به من ادراز نمیم تو برد از تو ما این چیزاری طریق شما شما ت کردیم، تکیلی کردیم برد این هشیش داری. یک مرد میشینه امکان که اگر مرد کردی انجام تو همه مرد ها شیدن خودی اتراز یک مرد میشینه اونم برشور کرد به دفتره تو این مرد تو یک ده هفتی در اونجا اوزه تا مرد میشینم که اگر که کردی انجام این به اصطلاح هم به دهاز زمان نرسول دار مبیند تنس کرد حتی در اهل سنت دارن که اصلا بارش بعد عمر آمد بعد پیرنبر بوده هر که شکل عمروین یعنی حتی حاضر شده یک عمر بکن برای اثبات این احسن. در این راژه به اصول همدر و این رنگهی رنگ که واقعا بردن صافنم من موشه زمینه تاریخی که برس از این محجب زمینه تاریخی که برسان در دارو تجره و دارو سنه دارو سنه تنه و در رویاتی ما تعلیم نشده خیلی گرسی خیلی این وقتی به از وقت مرتبه از امام سجا داره که ما از در از این منحسره از این منحسره از کجا نرکنم از بزیشون در از اینجاها که ایشون هستر نرکنم از در خود رو بوده باشه این به این تعیید میکنه که در مکتب احسر برین جناب صحب مصرف منفی بوده با اون زمینه با اون, اجتماعی، با اون در اجتماع این که رو بازه به این طرف رو گرفتن خیلی عجیبه یک مرموشه به بر اصابه ما چون شواهد تاریخی رو متعرض این دوته با شواهد تاریخ نگاه روشن بودی در این مسئله ترکید شده با قول مرمومه شهیدستانی در شردونه چون این همه ما روایتی متعرض داریم در باید موسیقی رازی داره حریش داره در میاد. البته داریم در کتاب با به ترتیب اومدیم شما سر در ترتیب بشین کاموده. در حالی که مش نداریم که هم ترتیب باشه. حالا اینکه که در مصاحبه علاوه می من همیشه این نکته از در ذهن باشه. اخیل از بردی اون نقطه خیلی میشه اون طبیعت مقاری مغارفی که خیلی داره طبیعت مقاری مغارفی اینطوره اینگاه باشه خیلی ابهام عجیبی داره به که ما نمیتونیم یک مقروم واضحی رو او یه مساجدیه، بازدست مساجد، او یه توش نگه داریم یه آبیش میکنن، او یه این مساجدیه، بسط هم داره یه نفر می‌تونیم مشکل داره این یه این بزرگ می‌تونیم فی نهست دیداریم. حالا صدقش ولی اگه کسی نماس یا با او با ما مثلاً هدیه بیشتر کرده. مثلاً این نماسی هم خیلی نامه‌ها با رو این مشکل می‌کند، شریان رو هستی. از از اشاره اکس کردم مثلا خبصوی همازه رخصی سرکوست دارم در یا سیاه پوست این ای نحوه خواهد سرکتشون این خواهد این نحوه خواهد سرکتشون برای ما هیچ تدایی نخواهده و هیچ نوع جمعه های لحبی و لحبی نداشته باشه اما باید مثلا یه اما اگر هر بگنم باز درست باشه که سامن رو ترمید سامن به از این یک نکته مهم در باقینا این بود که اون در به زرمیان به اصطلاح در اون زمان مصارت بوده این بوده که کسی میخونده یعنی که بوده از بیشتر چنیزها رو جالیه ها به این در دنیای عرم از چنیز استفاده تیجادتی شد بود برای فخشا ولی خنا من در بحث مغمیه هم کردم بحث گرفته به خاطر داشتن صرفت خنا که نبضه خیاری هستم آقاست وارد خیلی سامن در برد در جنگ ها نیفتن اینقدر کنید عصیبی این در برد در زهن کنید سه از یه گوستن از این تنزه کنید سه درمی و ما در برد در این کتبی که در تاریخ نوشه در این درسته بنام برد در این مقامیه هزار درم رفته یعنی چیز کنید بساید مزایده بده بس. هر راه شدهند تا چهارسد هزار درخم که شبهار مخدمت کنستیم بکنیم این یک مطلب عجیبی بوده یعنی چهارسد هزار همین این هم امیدوازه که از آره اگره های این زن این که بیدن میشد این مقاضر درمت داشته باشن خیلی عجیبه این مقاضر خیالی چهارسد هزار درخم که آره دستون شما دایی خلید روش این جنیزها می که ما این یک مطقیه اساسی به بک اون یک که شواهد اینا رو برموشه تن روشن فکرین بداید از اون می در در جناه بوده این شواهد فکریه یعنی به دوارد اخراف اون صدا بوده دا دا یا دارد با بارد سلطان یا زفن همراه ویتنامی صدا بوده که صدا بوده حتی که بعد ها بعد از اون حالا آلات موسیقی مثل باربر و اون دو تقور می ها اونها هم اضافه شده البته خب طبیعتاً من یه بودل فقط خار می زدم یا تقور می زدم یا باربر می زدم انواعی که یا بودل می زدم که دیگه فقط شوت بوده آواز نبوده ن بوده خوندنش اوني که شورایو رادیده بین عرب اون حالالت شخص شده که غالبا این کارنده ها اگر وارد حواله خاصی نهادن بیان گویا به نوع دستاها را و ذهن و روان های می کنه اون سوال درستو حالا که این اگر هر داره میگه صحبت میکنه ارجو میکنم لاکه اینه بدونیم در این جلوی از عرب و حتی در شام که بعد از مدینه هست کردیم مرکزه کنها شد بیشتر همین کنها حرب شدن همه مثلا پس سال 800 سال قبل از این در یونان جناب بیشتر به موسیقی و روابط بین این اسوار بود از قول این رویازی همه سامی شد موسیقی که در ایدار شمایش کنهای زمانه این از ریاضی احساب صدا کرد همیشه بودم هم هم که از زمان ها مطاره. یعنی این دو تا فرهنگ با اشتباه نشه یه فرهنگی که برد از داشت در بوده هفتت سال قبل از اسلام تا سال داشت که بزاده مدرن بود انواع صداها به شیش و شیش و صدا رابطه به و رابطه بین رو به رابطه بین این صداها رو شخص بکنه این به موسیقی داره. همان این تو در نبود از این بحشنه مطلب چرا در زمان خلافای زنی عمیه مخصوصاً معاویه یعنی معاویت یدیده خالی پسر معاویه به خودش خرد کرد که من خلیبه نیستم پسر یدیده من بود این چون ترتباط داشت با اصطبال حوضه ما با غربی ها رو چاندگه شاند سله داره با یونا یه مردار از گروب یوناسی رو ترجمه کرد من الان دقیقم تو هم نیست که ها یکیشون بخش منطقی رو ترجمه کرده بخشه از فیزیک و از و از اون تب ها ها و ها هر و کیمی آگر شیمی بسند. شیمی ترجمه شد به عربی ترسط اینچه که از در احتمال میدن یابر یدین همینچه هست. یابر بسند برمیه مراد همین خانده به محاویه از هم نیست که حالا موسیقی را ترجمه کرد از اما در این مناسبتی در کتاب عبدالرمان برای 20 ایشون در ترجمه اسلامی این کلی با آسایی یونان، در ها بیشون کن که یکی از اون که به بود اصلا این طرایلی یا طرایلی به صداح تاهای بزنانی یا خودتاهایی این ایشون که در, ای ای ای در جمعه نشد در که ما در سبو ترجمه نکرده. یه بردار از موسیقی رو ترجمه کرده. پروتش ترجمه شد به هر حال این ترجمه به انتباه نه. من در جنوی های اتصال هم بنابرای معروض در زمان مرمونه بگم یعنی من که من به خواهد کنست که با هرسول در که در سبوی دارم من به سه می‌کنم اتصال هم بحث نیشم رب این بس رو بوده بس بکنه اونشی که ابروز اونها موسیقی نه این روز سال هزار ساله در کتوب فرسان فرسفه آمد بیازی آمده اونشی که امروز وجود داره این در حقیقت کلا آثار ایونان نیست من در که کردارم برده میشون مقابله کرده نه میکنه که قسمتهای از آثاری ایونان هم ترجمه عربی نشوند تا حال اون که موسیقی با اون چیزی در ریوایات در زمان صدر مطرح بوده، با هم فرق داره. بلکه اگر دقت کنیم مثال کردم، اون چی که ما امروز حتی بیان اون می کیویسنا، با اون چی در زمان رسول سیاه با شب بود. اون یه هم هم داره. با این هم فرق یک نواس شیخ از اینجا بعد اینکه کلوازیم یه که به استدار با ها در شروع بکنه بحث میشه اون بحث اینه که حمیقته به ناس این من, من روشون که موزیدی استداری خالجه ترجمه یونانی در درمه اول و یه نمیدار ترجمه آسایی ایمانی در در دو بوده بیشتر به و فیزیک و تب و این قسمت ها بوده و ما بخش های میگلیم پس یا اوسیونی ها یا دارمت نرسیده چکه هست نرسیده. خب طبعا میدونیم آسایی که هست عدود 600 تا 500 سال های دنیا همسه بنداری بیشتر منصور از جاگرد نه هجام که احتمال رو که ما لیکن نبودیم شخص وحبی بوده مجموعه رسالی در از سرنگ قرم ترجم کرده بوده این اسم وحبی رو بوده باشه به هر حال اما ما تو اینها هر حال تو زیده خود را بردو کنم آثار مصیبی ندیدیم مصیبی اصطلاحی همینی پس این هست که ما پرناه در رنیای اسلام از در مدیده و در, در شام حتی بردها در بردار حتی بردها در بردار ممزوجی از هر دوست یعنی از اون رو و تنبور و انواق این حالات موسیقی اون زمان استفاده که من هم انواقش بود هر دو بارم اما در زمان صدور روایان تا اونجایی که شماهید ما روش میشه یکی به دفت بوده بیشتر از همه دفت بوده. و اود هم بوده، نزمار هم بوده که این رو این هم بوده، مزامیم و طبعا در زمان پیمنبر کرده بودن، با بودشت و زمان باز بیشتر شده اما در زمان بنی همواست که اینها کاملا جمعی دیده پیدا بی و دو تا تصادفان از مغنیه های محروب دنیای ارسان ها که حضور هم در وارده نه گازی داریم موسیقی بر فتنه است. از هر یا از هر کدوم موسیقی به که در زندگی برای از جهان های به از مغزی هایی است. لوازمش یا کل مغزی و سختانه یا کل من هم امین خواهم بود. نه که شما دنبال ما میگن نه گاز. از کلارینوس بسیار از یه برای علی‌بی می‌تونید شلوشی کل مغزی کنید. بله هم نیازی موسیقی نیست هم. حالیهایی که من اشاره کردم که بخشم بشه، زنان در دنیای اسلام یک مشکل اساسی وجود داشته، هم به لحظات حسیت مشکل لازم داشته، به لحظه های تهرانی در کودکی داشته، هم به لحظات حکم مشکل داشته، و هم به لحظاتی که در استادیاپر داوودی گرفتیم این کارها را چیم میاده؟ این اعمال را چیم میاده؟ هم سعی می‌کردم بازم همون رو مواز و ساراتین هده که همون من در شباز بحث های در به در این به در اینجا که الان اینجا نین بخش مجرم می‌شه اعتبار درجه‌ها کیفیت صوته مثلا صداران برم بخونه، اعتبار درجه‌ها اون مزمونه هر خب نامور مرور لفظش تحلیق بیشتر بود من را اینکه از یکی روز درشمه در به در در صحور تایب از اودابن ساگیر یا یعنی مروران کلام دنام مرور کلا لذا این دنسید که تا زمان ما همه مثل اتبار در دنام به هر دوست یعنی مزمون کلام این همون زیر موضوع طرح هست یعنی مقاله‌ای عاشق بوده در عرش بود معنی در شخص یونانیش تو ویتیگالر باشه تو شعر و نشینه که در روز بعد سرآب خن سرود مثلا شعر رو گفتن براد شعر دیگه شعر مصرح نیست مضمون شعر یوایده ولی مثلا نثر باشه مرحله تغییر این بلاغت است بودن شعر اینجوری هم نه به صدا نیست اون است، اون مضمونی که حسابی رو با خیلی صدای مضربی نراشید از خواده درشی تو شاشین چرا به, به. قول زور به؟ چون داره قبض زور گوه که کراه باشه یا لحبر حدیث که حدیث و یا اگه در اون ما که برده ده اخوار مثل هم نمه قبض زور و قبض زور یا احسر. و این دیویش نبیش هاستنش که کسی بنا بوده تو بگه احسن زود رو ده ده احسن. و حال اول آنجا رزده دیگه هم نیان احسن از او سه مرمو که همون که اول از کدرم خور زود در آیه مبارکه به نیمان تصویر کسی شد نه مرادی نیست حتما یعنی شما مرادی باشی که کلامی بایدی که یکی از صدا صدای ما خلاف که خلاف فترک کجرا هست قبضی زود مرادی هست. گفتار کجر و بعد در اینجا منصده تقییر دازم به شبه شبه نبوکو علیه تنوسین تیم منصده تقنی از آفیر به جایی از تیبا سوچون پا لوشتر این ها بدر کرد هر جند این برایت همون جایی دیگه نبوده هست که از اینا احتمالا متحصد رو جب عمدیه بوده شد شرار جایی مقرمیت بوده شدش جایید نیست حتی که رو بدر کرد که جند امان پر لوشتر این ها بدر کرد که جند یعنی به برایت این ارمان و ظهر و فضالت انتیزه برنا. یعنی اون صداقنا نیست مزمون بناست اگر مزمون تشه آیاز رو با همون صداقون نیسته شاد ندار شیل دیگه میکنیش شاده برنشون که, شا که در در استعمال این نراز به که مشکل قبول بره ما در بحث مقرمی هم کردیم قبول یه قرار قبول یه در مشکل اون جاری در این, این حساب می کردن مثلا این جاریه که این مجرد بود به خاطر صرفت مغنیه هزار درم می این یک بود یکی اشتار نداره در بود در فراهان بگونه فضا روی بخونه شعر بگونه آقا و مثلا یک این کارده اون معامل باطله و شعر بگونه برای در بود چه شما، به نظر یک صفت محرم از بودر در واسه این جایه جایی بودن سر بردن و کنه به برگه آقا آوازه خانی شده یک بردن اون این هم در حال که اوازن بودن پس به یک تلیم تبر رو حتی طرح خیلی زیباز اگر بردن طرح ارزام اما شان این زیبازی نفسی صلیب شده بسید دومیم اگر از یعنی در ماده ارزام بشه از اون معامل بازه بود کزایش ماده؟ که اون دو اشتر ایتحاق را درد کرد و زده ارمان بیده که مرموشهش مسئله ده شدن من اعتمامی در روایه از ما دیگه ها باشه ارمان ارمان مخالبی باشه ارمان سجاد نستاده باشه و قبول روایه هست با شماهدی که ما از قریبه احقای بسیار بسیار بشیده و که در حدیث به نام از این حدیث در موارده به نام از ارمان حدیث در حسون خیانتس و محرم خلاصش شهر خواهر دیگه کیفیت یا او مضمونه یخفر صورتنات ماتان مشتران هر کلام الباطل بعد, بعد در نز که کلی که ها مقصد بخونم میشن فرد اتصاد انه ها رازد و علاقه به شعار نقبل حسیز بکن لحب و در اللہ تعالی و کنه از دو ایشون میگه و به جمله کل دوسته رو شدید یارا تو نظر من الکرام لحب و روازه هم ظاهرا آخرش که تا اینجا موقع خواهده را ننجه به روز بخواهد کنه باز شیخ رو جمع از کنم من اون شکر از در آنسته توی یک مسائل در اوش تاریفی تحریفی می کنزیم مرادیشو انجام میدنم توی در درست شد تا اینجا شایدشی بودن کلمات شکر دماغت و تاسیدی که بعضی باز واضح باشه یکی اینجا شیفیت یکی زورست کنمشد الله و هرنام و